راژیو فیلم سر و <تصفيق> علی اصغر احمدی مقدم بازیگران رضا روی گریم بچه تو <تصفيق> پرنی بیان خوشحالی مادرتو ببینیم فلور نظری چطور میشه که این ماشین با پدر خدا بیاموز فرزن رو گیره و همین ماشین شکیباره میذاره سر را امیر محمدی زن پس خوش من که همچی آن همه قرار بابا هم بسه. چه صحبه باش کنم منم خارگردان محمود معظمه توی سالانه بسکتبال حدود 20 تا پسر بچه هر کدام یه توپ بسکتبال دارن و تنبیل میکنن از در مربی با یک دست لباس گرم کنه تیره و سوتی بگردن وارد سالان شد با جدیت سوتشو به دهان میبره با بچه ها به سرعت توپارو رها میکنن روی خط وسط زمین به صف میزن وسط سود شروع به درجه دویدن می برن بی حرکت می سن. مربی آروم آروم به سمت قفسه توپا یکی از توپایی بسکت بر با دست فشار می نه خوب نیست. عوضش می کن. توپ دیگرم امتحان می‌کنه با دستش مم به نظرش خوبه سمت بچه ها میاد از جلوشون آروم رفت میشه با هر قدم چپو به زمین میزنه و میگیره به میزنه و میگیره به صف میرسه برمی کرده. صورت تک تک بچه ها رو نگاه میکنه جلوی بسر بچه که نفس نفس میزنه میسته احسان، این چیه؟ خوبه این احمقانه ترین جوابی بود که میشد داد. این مقدار هوای محصور شده است که خود به خود هیچ ارزشی نداره. این دستای شماست که با اون ارزش میده. متوجه شدید؟ تو چراقت بلند بلند نفس می چه شي هستم؟ یه دور دور سالون. بودو احسان دور سالون میدو. خب. بذارین از همین روز اول یه چیزایی رو براتون روشن کنم. ما اینجا آدم ضعیف و تنبر لازم نداریم. شما میتونید امروز به جای شنیدن قرغار من بشین پای تلویزیون هاج زنبور اصل یا گالیوه و پلنگ صورتی رو اینجا چیزا رو نگاه کنیم. پدر مادرایی شما پول ندادن که شما بیاید اینجا مثل گونی سیب زمینی از اون ور سالن گل بخوریم به این اون ور سالن. من هم گل دادن گونی سیب زمینی رو ندارم. بند کفشو یکی از بچه ها بازه چرا بند کفشت بازه؟ احسان چرا خواهی مثل پنگوئن رو برد میکشی؟ درستو مفکم بودو در تو برو ایزا بچه بندش بازه شروع شنا رفتن میکنی من به موفقیت های محله و منطقه و استان و حتی کشوری هم فکر نمی کنم. بچه های باشگاهی من همه باید قوم بره مرزا افتخارا فرینی درسته بهنام؟ بله بهنام که به زحمت شنا سعی سر می کنه حرف بزنه نش نیدم پانزده سال بعد جشن رونموی از کتاب عکس بزرگی از نویسنده و همراه چند خط معرفی کتاب پشت سر میز نسبتاً بزرگی توی سالون قرارده. روی میز یه دستگاه و چند جل کتاب با همون عکس دیده میشه. آلو مندار همه چی صفر. مرتب جلوی میزی ستادن منتظر اومدن بهنام نادری هستن تا کتابشونو براشون امضا کنم. آوی نادری الان که کارش تموم بشه، میارم. شما که با وظیفه‌داری فرمودی فرمودید، یکم دیگه صبر کنید. مرد مسئول سالن به سمت خانومی با مقنعه ووشال شال زرشکی رنگ میشم. یه ذره بهتر میشم. لگو ولی دیگه نمیشه نگاشون داشت. دو ساعت ایستادن. سوفاندری سان رو مفهومشونه ببینن. میخواهم شما, شما رو معرفی کنم. شاید بازی بخواد ناشر روی کتابشونو امضا کنه. نه. گویا این سوفانری تمونش رو داره. ماس به سمت در ورودی سالامی رو در باز می‌کنه. بعد از لحظه‌ای به نام نادری وارد میشه. آقای نادری با علاقه و خبر، در سمت کامپیوتر می‌دینه. احساس میگه ایس چاب و راست بهنام آرومانو به سمت نیزی یه خود بشتی میزونیش روی میز برای شیرینی و آب خانم خانمه نشد نبخندی زنید بهنام جوره از آب میگهش رو میوشد بهنام نسخی رو امضا میبنید خیلی ها با خادر چاگیی سرزنی شما میگردن ولی کتاب شما باقو فهمان دو مرد جمعان دو غلوگ شاخ بروش ایستدن ممنونی باقای نادری سعی میکنه لبخند بزن <متاب> خواهش میکنم کتاب شما باقای زدیدیت خودوابعی رو به روی ما باز کرد دختری جلا میاد و کتاب شروعی میزن خواهش میکنم تقدیر از خانمای جامعه‌مون، یه انجیو تشکیل دادیم که دوست داریم کتاب شما رو به جوان‌ها معرفی کنیم. سپاس ب می‌کنم. آیلانا، کتاب شما رو زندگی من خیلی تاثیر گذاشت. متشکرم. مسئول سالن به سمت خانم ناشر. بذارید دوتا امضا کنه. خیلی ممنون از جا به جان، پسر جانی، یه تریسپ بالا کافی می‌پره تو بهنامو بده. بهنام جان، جان، کتابت تو نگاه منو به زندگی خیلی عوض کرد. بش اینا جانیه ح هم شته باشی جان بر هم جا مربت برجان چهسبی سرن جران میاددی این هم از فهان که پروندهش بسته شد وتورا می صنت پس فردا شیراز هشتم شهر کرد دهها تا اینجا چاپ نهم رفته. تا بهتره زو تا به فکر کتاب بعدیت باشی که تا سابقه خوبه یکی تو ذهن مردمه اون یکی رو روی بازارش کن. بعد برم تهران. چه سر خوبی باشی درصد های بعدی این کتابو بیشتر می‌کنه. حالا معلوم نیست. شاید بخوام ناشر کتاب بعدی رو عوض کنم. چی؟ گفتم بعدم تهران. نمیشه سالگرد ازدواج مادرمه. بعد کنارش باشم. فردا باید چیراز باشیم. کتابارو رو استخدام رفته. خودمون میرسونم برام مهمه که تناش نذارم بعد از خطو ببرم خیلی به من باقید است مگه پدرت مرده؟ تو کتابو نخوندی؟ پسر 14 تا 18 مربوط پدرمه تازه تو دیباش کتابو اون تقدیم کرد خوندم دقیق نکردم. نرافت بعد از جلسه این رو به برگرد گوشی موبایل بهنام از چندجا تماس گرفتن گفتن میخوان بر جلسه تشیل بگیرم با عنوان نویسنده موفق گفتن وقت نداریید. از کجا؟ فرهنگ سرا آموزش پرورش وزارت صنایع. نمیدونم شماره ها رو چک میکنی شماره هم که پاک کردی به ساعتش نگاه میم. چی شد پس این غذا؟ به پرواز نمی رسم.بعید میدونم پای پرواز بلیط گیرت بیاد بلیطشانشون میده. کیلیت تاکسی زرد رنگ با پلاک تاکسی تهران متوقف میشه. مهنا با ساک سفید رنگ و از تاکسی پیاده میشو به سمت در خونه. می کیلیت میخواد بندازی که پشیمون میشه. ا ا سلام خانم این مایانه ما آقا گونده سب کنین الان اینه که افتابی داره و میخنده دستگل رضای صورتش میگره در باز سالگرد سالگرد ازدواجتون مبارک مهرم این یه قدم بر میدار و جلو میاد که آخا چون شمایی؟ همه کی باشه؟ باست دوباره خواستیم بیاین تو حیات هرچی دمه دستون بود پوشیدین دیگه منظورش دنپایی زنینهی <تصفح> پای آقای جون بلا بدین آقا تو قصد شد ممنون بود آقای جون با اصا آروم آروم از پله ها بالا میاد اهنام کمی جلوتر وارد خونه میشه آقای جون جلده در ورودی میشینه که کفشاشو ببوشه مادر حاضر و آماده از توی اتاقش بیرونیت شیک بوشه آقای جون حاضرین بریم الان دیگه میرسه ها کی؟ اه سلام مادر توی؟ سلام مگه منتظر کسی هستی؟ اصلا بله ها میاد نه ولی فکر کردم تو با این همه مشغل کاری نتونی بیای. جونی بله ها به بهنام این روز خاص رو فراموش نمی کنم بهنام دستگاه رو به مادر میده مبارکه راست خودت فهمیدی. چی؟ آخو جون متعجب نگاه میکنه. مادر در لبخند میزنه. به اون خوش قاب شده. ما در برداشت بسونه می‌شه. گلدونی به هم می‌داره. رو آب می‌سازه و پولش می‌خونه. گولا رو توی گلدون می‌ذاره. داری می‌بینی آره. بهنام پشت میزه آشفاسخونه میشینه کی قراره بیا؟ مادرم گلدون روی میز میزه رو میشینه مادر با خجالت به میز و بعدم به بهنام نگاه میکنه بهنام لبخندی شیطنت رو دا میز داره آها اونی که تو تمام این سالها باید میومد آره؟ <تصفيق> پس بالاخره از تنهایی در اومدیم چرا میخوا؟ ما در بلند میشه و که پیشو از آشپزخانه بیرونی آقا جون اینطوری خواست عجب. گفت یه مهمیت بخونیم تا با اخلاق رفتار هم دیگه آشنا بشین خب بر هر حال اون یهعاقل مرده تو این که نمیتونه اخلاقش رو عوض کنه و اگه اخلاقمون به هم جور در اومد بریم رسمیش کنیم چطوره؟ چی شد؟ آها به حال حرف آقا جون حرف حسابه حالا این مرد خوش هر دو متوجه حییت میشن به صدای آخای جنو نفر چهارمی رو میشنم دیگه... تو میشنفیش من میشنزمش آره فقط بعدی خورده به اون ذهنت فشار بیاری بهنام فکر میکنه نمیشونه رسی بزنه نمیخواد سایه سیاهی جلگه در ورودی دیده میشه. خودش داره میاد بهنام به سایه نگاه راقب یوسف مربی بسکتبالش رو می‌بینه و دهنش باز می‌مونه. مربی که یه ذهنش با همون گرم گرمکن مشکی و سودش وارد میشه. چطور مادر هلکالتی خواست که دیدم بهنام که صحبتش بود. فرهاد در حقیقت که تو به تندرو کمی پیر شده. سلام آقا بهنام. خوشحالم می‌بینمت. دستشو دراز میکنه بهنام دست میده فرهاد دست بهنام رو محکم فشار میده و بهنام دردش میده شب توی ماشین چه ماشین راحتی داری فرهاد؟ مادر پشت فرمون نشسته فرهاد کنارشه آقا جونو و بهنام برشتی وقتی پشت فرمون نشستی بذارین یه چیزی رو همین اول نماشرخص کنم اگه میخوام مثل دفع قبلی حبایی من داشته بشینم کباب و جوجه و برنج همه رو بندیم به ناخونده من نیستم نظره تو چیه بهنام جان؟ بهنام سرشو به سندلی تکیه داده خیره ببین بکره که تا بری رسیبت نمیون چیه نه نخیه من یه رسطورانی ببرم تو که همه تون خوشتون بیاد همه گی وارد رسانه شیک میشن سمت میزی وسط رستوران که رزرو شده. اینجا فرهاد بهنمو که میخواد کنار مادر بشینه، به سمت دیگه میصراح نمایی میکنه. آخه چون خدایشو درمیاره رو همه گی میشینه. خب چطوره؟ انتخابت حرف نداره. بهنمو با دلخوری نگاه میکنه و نفس عمیق اینو که قبلنم نم به ثابت کرده بودن. چی شده مادر؟ نه یکم برنامه ها فشرده بود خستم پس غذا رو زودتر سفارش بده بیارن شهرش فرهایت مهنا رو باز میکنم شما چی میخوری هر چی که تو میخوریم میتونم سلیقت حرف نداره بهنام از حرف مادر لجیشت تو چی بهی هر چی شما بخوریم باشه شما چی آبا من اگه تازه باشه بام دریت دریایی کارسا <تصفح> نزدیک <تصفح> بامشریت دریایی <دلیت دلیت. تصفح> ساعت آروم آروم به دهانه می میرسه باورم نمیشه که به یادت نیاد یه پسر توپلو بامزه <ماز> اول مده با بسکتبال یاد بگیره ولی تو بهش گفتی بهتر بره کشتی به خاطر همین توپل بودن و بامزه بودنش یادم <ماز> افتاد همین که یه دفعه عقب اقعب, اقعب رفتی افتادی تو استح اگه نگرفته بودمه شده بودی درسته؟ نه خیل. همون که تا تکون میخور ده و برو ده تا برو حتما خیلی پشت میامد از نفس, نفس نفس دردن منو شنا رفتنم متاسفم به ایجا واقعا چیزی یادم نمیاد یعنی یه پسر چاقوطنبر چیز جالبی نداره که تو ذهنه یه مربی اونم مثل من باقی بمونه خدا وکیلی این یکی راست میگه اه. شما تا دسته رو سفارش میدی من میرم برمیگرد خواهش بنا بینماله کتاب درواد در مورد رازهای موفقیت و رویا رویی با حقیقت زندگی این که یه تاروب و اسم قشنگه ممنون حالا حرف حساب این کتاب چی هست اصلا چی میخواد بگه ببینید به مردم یاد میده چطوری با گذشتشون کنار بیان بازش ازش بکر من همین حالاش هم از گذشته گذشتم بعد همین بهش میگن گذشته شرابت خاطراتی خاطراتیه پسر چاق و تنبل و تو ذهنم می‌گذرم که شاید یه روزی باش روبرو بشن ولی مردم کتاب منو پسندیدن تو 6 ماه هشتا تا چاپ خورده ولی کلا تا خرش به دوازده تا هم میرسه <تصفح> ممنون ولی این اصلا مهم نیست خواننده‌ای تو یه مش آدم شکست خوردن که دنبال حرفای دلگرم کننده نمیگردن از همون حرفایی که فالگیرای دورگرد روشو میگن تا سر کیسه‌شون کنن بهنامیش بر نمیخوره یکی کوتاشو کم درست میکنه این طوری هم نیست قدم اینه که نیروی درونه تو و خوبی تو باور کنی و هزار تا حرف ست تا یواز شبیه به این که به اندازه دوتا دراز نشست هم واسه مردم فایده ای نداره مگه نه بینام میخواد حرف بزنه که فرهاد بود دست ساکتشون کارسون گارسون تا ببخشین چهار تا دستر با صورت حساب مهمونه تا رو هم, هم نشه و یه فعالگیری و یه مشرفانو بیشتر از این هم نیست فکر میکنم یه مقبار بیانصافی میکنید گارسن صورت حسابان متفکرم ازر بدید من حساب بکنم نه چه فرقی میکنه فرق میکنه شما همه مهمون منین پس لاغل از بدید دسر رو من حساب بکنم یعنی میخوای بگی من پول چهار تا دسر ندارم بدم نه نه منظورم این نبود پس کیف تو بزه جیبت رو هر چیزی رو بخور چش پولی از جیبش در میاد. دستتون رد نکنه. حالا این تعارف می‌کنی که گوشی بیا دست من اومه. چه نالرتی نداره؟ به شب شما حساب کنم یا شما بجون تو حساب کنی؟ درورتون هم نمیشه. مادر برمی‌گرده و سرجاش می‌شینه. چرا چیزی نمی‌کاره بهنام جان؟ بهنام با اکراه تکین مرغ دهان می‌زاره. نثار گیری بردارن فرهاد به غذای بهنام پششوره میکنه پول فالگیری رو میگه کاردن نداره <تصفح> بهنام لقمه <لغمت> توی <تصفح> گلوش میپده <تصفح> فرهاد با لذت دیفان آب و سرم شب خونه مادر روی مب نشسته و کتاب میخونه بهنام با بوشت وارد میشه روبه روی مادر میشینه جلد کتاب مادر نگاه میکنه روی جلد نوشته بازگشت به خوشبختی فهیمه رحیمی میگم مامان تو که میگفتی بعد از فوت بابا دیگه هیچ وقت فرمون نمیشینی آره ولی شکیبا با هم صحبت کرد مجابم کرد که اون اتفاق فقط یه حادثه بود آها خب اگه به گفتن بود که منو و آقا جون تو این ده 15 سال هزار بار گفتیم خب آخه شکیبا یه جورایی عمیق و تاثیرگذار گذار صحبت کرد که همون بار اقل قبول کردین اصلا آشنایی من و شکیبا شروع جالبی داره یه روز آخه جون اصرار کرد که برای هواخوری بریم دم آون. به اصرار اونم بعد از این همه سال من نشستم پشت فرمون همچین که وارد جاده شدی ماشین آتیش گرفت. ماشین هم که وای سادن نکردم نکردن بیان جلو کمک کنم. تا اینکه شکیبا سر رسید و بدون اینکه بترسه اومد آتیش خاموش کرد خب اینکه از این که پیچیش بوده خدا را شکر که این روزه تو همه جا 10000 هزار از این امداد خود راه هست یه تلفن می‌زдин که مدیون آقای مربی هم نشین نهنام تو به عنوان نویسنده به وجود نشانه تو زندگی معتقدی چطور میشه که این ماشین یه ای بار پدر خدا بیا مرز تو از هم میگیره و همین ماشین شکیبا رو می‌ذاره سر می راه حاد شیرین یعنی همه اینا اتفاقیه من که فکر نمی کنم. مادر بلند بلندشو میره بهنام با دستی سرش میزنه اتاق بهنام بهنام توی تاریکی روی تخت دراز شده و خوابش نمی به سقف نگاه میکنه قلت میزنه مهمان از شدت عصبانیت بادشش رو بر و روی دهنش میذاره می و صبح با ورزشی توی ها ها و هوا صاف و پر باره دیگه پارکی میشه توی زمین چمن مخصوص بازی شروع نرمش میکنه بله او پایی در بره. هر واله میزنه زانو بلند شروع میکنه به نرمش درده شروع میکنه به از این سمت زمین به این سمت زمین. از این سمت زمین به این سمت زمین. وارد کافه میشه بلوزش از عرق مرد کافه بدون نگاه بهش داره پوشخونه تناس نکنی میبینی که آخا جون ترتیله ترتیل یه ترتیل. بوتری آب بمیده مهنم با یه سندلی میشه مهنم جون سلام توی پویاست دوستش اله سارا پویا با بوتری آبی میاد کنارش میشه بابا خبرتی تو اصفهان تبریز داشتم معلومه چه ناشرت خیلی برات سنگ همون گذاشته آب چشمش به به عکس روی دیوار میاد کنار بویا فرهاد بود اینا تو مسیری آبی که دستش رو به سمت قبا عکس پرتاب میکنه قاب خب زمین دید. آدم بدی نیستا فقط یه چند مخموعه تا چند وقت پیش پاتوقش همینجا بود بيتزا فقط سبزیجات اون شابهن فقط دو با این کفته یه بار میومد اینجا ولی کلاس رستورانمون خیلی هم بابای اون می اومدن اینجا من که باش خیلی یاد میکنم خیلی صفا میکنم خیلی باید پس خوش با من که همچی آدم همه قرار بابا هم بشه چه صفای باش کنم من خدا خوش باش من روی لبای پویای جوان یخ میکنم حاضر می فهمی چی شنیده اون پویا خیلی متعصف شدن او که فکرشو میکنم میبینم همچین آدم نرمالی هم نیستا ازیش هم رو ناچاری زدم تبلیغ کارمون بشه بخبر من با تو بیشتر آر میکنم بیشتر از بیشتر کتاب کتابتو خوندم اصلا زندگی متحول شده تو برای یک کار ساخته شدی که میتونی توش بدرخشی فصل دوازده به خودم گفتم آقا پویا اون کار مطمئنا همبرگیر دادن دست مردم نیستا همین شروع کردم به تحول شروع کردم به تبول سیمکار گوشی کار کرده تازگی یا از مجلسه اعت چطوره؟؟ خوب. به من با اون در نیفت شانسی برای برنده شدن نداری یا؟ اون وقت مجبوری که رو در روی مادرت وایستی شکیبا هم محبوبیت عمومی داره هم جا افتاد است. کسی باورش نمیشه که احسان اون کشته باشه. احسان؟ همون پسرک که آاصل بله پارسالی عمل ناموفق باشه بازیگه نامزد کرده بود تفلک همه میگفتن که زیر عمل طاقت قد بود ولی من میگم پنج سال جون کندن تو باشگاه شکیباب و چند تا مدال نسمه و نیمه اونه اپ بود نه یه عمل سه ساعته بعد با شرف رزنم بهنام بلند میشه که بگم باید دستشو این بهترین کاره و حقیقتای زندگی رو به روشو و بگو که من میتونم تغییرشون بدم هرچقدر چقدرم چه حقیقی باشن فصل 19 ویدا میخواد بره که گویا نمیزاره ببین حداقل حداقل خواستوره کتابتو برام امضا کن تا من بذارم تو رستوران تا کارمون بشه ببینیس برای دوست خوبم پویا اه. که تحول از خودش شروع کرده ها نا میگه کاتشو با خش مرتب میکنه از کافه بیرون بیاد. قابع اکس از روی زمین بند داره و دوباره روی دیوان نهاز میکنه بهنام وارده کچه شده میشه که بله پروانه توی همیستنی الان کار دارم بعدم میام ننبال ازاله نکن بارو به کارت بره حالا دیگه باید خبارت از مامانت بگیرم ماشینه پروانه این وقتی پدر بسته کارو برده بود که تو کمیدی پدر دار شدی پروانه رو من ات دار پروانه من پربانه. پربانه حرکت حضی مید مهنام کلاه گیامکن سرش میز رو از خونه دیرش. از بالاترش با چند از بچه ها رو تشک کشی هست. چقدر تشک. فکرونی خیلی نگاه می یک شنا رفتن بچه ها رو می بینه. مثل همیشه. تو هم تو برو چی؟ چیکار کار دارید؟ میخواستم بگم بابت رفتار دیشه هم تو رستوران متصفم یک کم خامی کرد فقط یک کم البته پیم کنم شما منقدر فخته باشین که منو ببخشید تو داری بر من تنین تکلیف میکنی؟ نه نه اصلا با فرهاد روی کشه پسری که داره شنا میکنه فشار میاره اون داره اذیت میشه دفلک نمیخواد میخواد به هم بگی باشه های ادام چکار البته فکر میکنم شما هم به نوبه خودتون بابت رفتار بیشه متأسف متاسف باشین من؟ نه قضیه کتابم و فالگیر و یه حرفا دیگه هنوزم روی حرفم هستن آقای فالگیر به هم کاملا به صورت پر از تماثور فرابات شد کنید و از سالن خارج شد ولی مادر من هنوزم فهم کنم این شکیبا اصلا آدم مناسبی برای شما نیست حیات تا مناسب از تو چی باشه فکر کنم بعد از این همه سال بدونم چی برام خوبه چی برام نیست؟ نه نه منظورم توهین به شما نبود مادر یاده هر روز از باشگاه میآوادم با چش گریون میگفتم دیگه نمیرم؟ خب به خاطر که تو بچه این حساسی بودی عزیز دنم منو پدر خدا خدا بیامرزه در جریان سختی بیای شکیبا بودی اصلا به خاطر همون سختی بود که دوبار تو منندقه مدال آوردی بیشتر از اون حمت تو رو میخواست که پسر توپالی من نداشت مادر اون منو بچه ها تو باشگاه زجر میداد. خب بالاخره یه فرقی باید بین ورزش و انشا و باشه دیگه. تا از شکیبا خوشت نمیمد چن از وردش خوشت نمیمد مادر با حالت قهر از بهنام فاصله میدی از فله ها بالا میدی بهنام پشت سرش مادر تو اونو نمیشناسی تو هم اونو نمیشناسی بابا ولی اون هنوز هم مثل گذشته گذشته چی؟ در همین لحظه فرهاد مورد حیاتو شد سلام خریده که با زحمت کشیدی؟ سبزیجا مخصوص یهو وقت شما نیست پای گاز تو آشپزخونه دود و دم hadron بشه. اصلا درنکن. همه یکی به سمت خونه تراس. پشت میز نشستم به اون بطری دوغی برمی داره فرهاد دستش میگیره به مادر تارو میکنه. اون دستامش. حالو سه چرا گرفتی؟ هستی؟ ما اصلا به بهنم جز جزا... یعنی اصلا حساب نیست؟ اشکالی ندارد بهنام مادر این اصلا پیتزایی نزدیک خونه خودمونه به فر غلبه میشه به فابر گدونو برخورد. مادر میخنده بهنام با دهانی باز از تلچوب میخواد بولنش که فرها سویچه ماشین رو دکتر ماین میکنیم یا میکنیم؟ عضویت شما در سالسیده ماشین میکنیم بهنام از خون بحبه بح چه ماشین خوشگلی به ماشین فرقا نجد میزنه. روزای زوج فقط مطلب حالا مش به در میزنی در باز میکنه دوباره با مش نیزنی سواه میشه و روشنش میکنه. خیلی معذره بی کنم آقا شاکی با ازخایی حتما مراقبه ماشین کنم منم خیلی زخط راه نمیگی با سرعت از خداقانه برمشن بیراش میکنه با سرعت از روی سرعتگیره رد می داخل فیابانه میکنه تیک آف میکنه ترمز دستی میکشه ماشین میچرخه سر میکنه چه جایی که میتونه ماشین درد داخل کنه به چند از علامته اهدیاد برخورد میکنه اونو میرن توی آسمانو برمیگردن بیزن سکیبا شراق ترمز شدید و دودی که از لاستیکا بلند میشه توقعه میکنه به زنی که اسفند دود میکنه اشاره میکنه نزدیکش خودی که دست زن هست و میگره و میبره چیگه ماشین یه تی که زغال داغ میمیده زر یه سندرین ماشه تا بیسید یه دونه با عزیز مامان؟ به <تبق> این سندلی اقاب هم یه تیکیده که زغل می دست آقای تاکیباتون واقعا بستبایی میکنم از دستم سن. افتد سندلی به زغل داخت می سوزه با بزوق... آب. شد بیا خانو اینم پولت فراق سرزو شد شنو بکرم همین پیتزا خریده سبا روشن باشن روشن درنده اهم که رو با سرعت پرکت دوباره شنو میکنه به ویراش رفتنش از روی جدبل خیابون به لاین دیگه ماشین عبور رو برمیده دوباره ترمز دستی میکشه ماشین ترچیشی رو شروع به چرمیده به سرعت براده پوچه میشه میزده از ماشین پیاده میشه ماشین رو نازم میکنه در ماشین وارد <تصفح> خونه میشه مادر روی مب نشسته چی شده؟ به سمت مادر میاد بیسه رو روی میز رو میشینه میگم چی شده؟ قرار من شکی با عوض شد؟ آخه چرا <تصفيق> جون شکیبا با نظرش عوض شد میگه فردا بریم محضر عقدمون راست میکنیم برای همیشه نگاه کن چلقی قشنگیه <تصفيق> <تصفيق> فرهاد با کیکی به دست و آقا جون با دو تا برشمشی یا بروشن پشت سرش بارده سانده شد فرهاد داره بیشه بهنام نشیدم تبریک به ایفالگیر جمع بهنام با ناامدی بهش نگاه روی کیک تصویر قلب قرمز با طوری که ازش شده بهنام هرسی باید کوچه اینو ساکیشوتیه پاژانس می‌زاره. مازی برای پرده میخوام بریم کلی خرید کنیم. میموندی بهت خوش می‌گذشت. جلسه عبدالبرسی کتابام. برای بر چی لازم شد؟ خدا فرهاد بغلش میکنه و بهنامم توی بغلش می‌کنه. نقد می‌کنه در <تصفح> نفس بهنام بلند. خدا خدا, خدا همرا. مازی حرکت میکنه به به اونا که دور میشن نگاه میکنم. توی آشانس به فکر فرو خب من نمیتونیم این کمرو را نبریم. آم که خودم. چه رس خنانی؟ آجو. ببی مربی عزیز، من میدونم پشت اون چهره سرد و سنگی چه موجودی خوابیده. مثل دیوانه ها جلوی آینه و داره به خودش حرف کوروندی. من یه بار این بازی باختم. باشه، قبول. ولی این بار نوبتی هم باشه، نوبت توئه پیرمرد. بس بچرخ تا بچرخیم توی اتاق روی تخت دراز کشده که دره در باشه، مگه قفل نکرده بودی آقا جون آره بابا چی شده؟ آقا جون یادش رفته در قفل کنه بس که زرگ داشت بره خرید حالا مهم نیست چیزی نشده حسابی از پا افتادم عوضش چشم بازار کور کردی ولی <تصفح> هم حسابی پا به پای ما اومد آره فرحات خیلی حوصله به خرج دادی و دست و دلوازی بله ممنونم ازت. یه مش و فت که دیگه قابل شمار نداره شیرین خونه بهنام بلند شو در اتاقا میبنده میپره روی تخت باید. چی بود؟ جمعنم یکی تو گونه هست اصلن ناراحت نمشه تا پرل هستی هستیش که جرعت نداره به خونه با شب نگاه کنه آقا جنون از ساره بدونم اینم می‌آسم جت. تو یه گوی هم کی بزنی که هیکل نفس شب بالای فضا، قل رو خورد به سمت در اتاقش می‌دوه که فرهاد با چی غره میشه توی تاریکی شروع به زدن بهنام. مداشرو روشن می‌کنه. نام تویی؟ فرهاد گردن بهنامو که فشار میده. بریم. تو تو تاریکی آدم دوز خودی رو اصلا تشخیص نمیده. آه, تو تاریکی کی صد بار دارم میگم بهنامم. ممکن یک دوز باشه سوشم بهنام باشه. که میدونم؟ آخه کدام دوز میاد رژداد بزنه؟ به هر حال کار پدر قابل توجیهه. من تو این فرصت کم وقت تجزیه تحلیل نداشتم، باید سریع اقدام میکردم که کردم. آره ولی بعید میدونم اگه وقتم داشتید نچه بهتری هایدمون میشد. بهنام جای تشکرته. اون به خاطر مادر و پدر بزرگ رو به خطر انداخت. فرهاد من بهت افتخار میکنم یعنی هممون مگه نم ولی حالت فرهاد بسه پسریه که من همیشه تو زندگی آرزو داشتنش داشتم. فرهاد قلع توی دلش آب میشه آخرش به قهرمان ملی تبدیل میشه قهرمان خوبم خوبم خوبم بهنام با درد از کنار مادر رد میشه و میره داخل درشو آب باز میکنیم شروع به شاستن دستاش میکنیم توجهش به کابینت دستشی جرم میشه سوتی که به در کابینت آبیزون شده رو برمیداره و میندازه روی زن آه ببخشید آقای شکیبا میدونم که شما برای این سوت دردش زیادی قایلیم <تصفح> یه عمره با همین سوت به بچه های زبان بسته مهدم اعلام جنگ میدیم با دنبایی شروع به لگت مال کردن سوت میکنه و میکنه تا جایی که میدونه بعد به گوشباکان داره سوت رو میگیره و دوباره به در کابینت روشوی آبیزینش میکنه با امید روزی که آخرین نفس زندگی تو دو همین سوت فوت کنی پله دهنم از درد از شیخ میشه از پله ها پایین ماما دستی به ماماش میکشه آقا این وقتی تو موقع روشن کرده مخلوط کنه توی درگاهی آشوسمه خوشتش میزه <تصفيق> فرهاد جلوی مخلوط کن ایستاده و داره شیرماز درست میکنه بهنا بهش خیره شد و نمیدونه چی بگه سلام پسرم واقعا چه فکر کردی وقتی صبح سده اینو درمون بید بلاخره بیدار شدی همه حلیم فروشی وقتی صبح خواهب هم هم حلیم فروشی ها بازن هم نوموائی ها رفتم یه حلیم درست حسابی رفتم گفتم بشینیم رو دوره هم بخوریم که کلی کار داریم او کی اومدی دوره من پیش باییتون فرهاد در مخلوتکان رو برمیده و خیلی بی ادبانه و با همون مخلوتکان سر میکشه بهنام چندشه شده به سمت یخچال میره در یخچال باز میکنه و بطری آب میبر و با لج سر میکشه و شروع میکنه به فرهاد نگاه کردن فرهاد به به چشمه بهنام خیره شده هر دوتا دارن قلب گلوب آب و شیرموز رو سر میکشن که مادر سلام صبح بخیر سلام چی خاریی از این, چه این بعیده اه، آگه پهلوون چت ما در بطری آب میوره میگیره وای دست درد نکنه حلیم خریدی به سمت فرهاد میره که کارو خوبی کردی زیرزمندا نمیزنی گرفتم که بریم رو اون تراس بشینیم بخوریم این باد پاییزی تو سر و صورت هر چی آدم خوابالو دست که بخوره خواب اثرش میپره من خونه واده خوابالو نمیخوام به داره یخچ رو می نمیشه نمیشهحللی به این خوبی آدم کوفششه چرا داره نقشه من یه پیشنهاد دارم چطور امروز رو با هم سفری کنیم؟ مثل دو تا مرد. عالیه وقتی از محضر برگشتیم تمام به دو, دو وقت برای محتر هم میشه وقت هست ولی ما همه برنامه اون هم به هم میخوره. منظورتون قرار محضر و دعوت چند تا آدمه؟ این همه وقت گذاشتین برای شناخت مادرم من فکر کردم به عنوان پدر آیندم انقدر براتون مهم باشم که یه روز وقتتون رو برا من بذاشت این بچه از عقوده مرد حالا یه روزیتر آسامون به زمین نمیشه آه. راست میگه فرهاد این یه انتخاب بزرگه بهش فرصت بده. فرهاد به صورتش خیره شده و درزالی شبکت من برزشگاه فرهاد داره وزنه وزن می میزنه بهنام با خیال راحت کنارش نشسته و نگاهش میکنه خیلی مهمه که آدم با های زندگیش کنار بیاد بعضی ها رو نمیشه تغییر داد واسه همینه که اسمش حقیقته با مثل شاگیبا که بخوام یا نخوام داره جزی از زندگی میشه برمان وزنه رو سر جاش میزه رو بلندشو میشه رو به رو از پشت سر حالا دو تا وزنه کوچیک به دست میگیره شروع میکنه پشت بازو زدن. آدم نباید اطراف زندگیش رو اونقدر شلوغ کنه که نتونه کنترلش کنه اصولا شما نگاه وقتی میکنید در بحث روانشناسی بالینی گذشته رو باید به خاطرات سپرد و به آینده نگریز چون میتونید به اهداف خودتون نزدیک شید به آینده خودت چه اتفاقی افتاده مهم اینه که از گذشته بگذرید به یادتون نیارید چون که تمام شده راست اینه راه موفقیت یه بخشی از بود تمام روزم میخواین جلوی من بشینین انشای رو که به خورد مردم دادی بر من از حفظ بخونی همه هنرت همینه حرف زدن تمرین نیست دار فالگیر میخوای شروع کنی یا نه بلند شدی که روی دکمه استارتوم میزنه شروع به تنظیم کردن تردمین میکنه حالا تردمین راه میفته فرهاد قدم برمیده بهنامم روی تردمین کناری میاد و میزده اون هم دکمه استارتوم میزنه شروع به تنظیم کردن دکمه های تردمین میکنه هر کاری که فرهاد انجام داده رو انجام اول از سرعت آروم دو شروع میکنه. فرها فرهاد دکمر رو روی سه تنظیم میکنه. کنیم بهنام همین فرهاد سرعت روی چهار می بهنام لجبازانه روی پنج تنظیمش میکنه. فرهاد بیرونی مقا کردن به بهنام سرعت روی پنج می زره. بهنام سرعت روی شیش تنظیم می‌کنه. فرهاد آروم آروم سرعت روی شیش تنظیم می دنه. بهنام روی هفت هشت نه ده حالا شروع به دویدن کرده نمیتونه با سرعت میده تا این که تادرش از دست میده از کش پرتاق میشه به سمت دیوان فرق با آرامش اصطابه توبیدن رو میزنه و بطری آقشو سر میکشه خیلی خونسرد از روی ترد پا ماشین کوپول تو کتاب روز زدم های کلدش از چیزی ننمیشنیم کوپول؟ تو به اون گفتی کوپول؟ من گفتم کوکو. آره، همین الان گفتی. یه بار هم تو باشگاه گفتی. فرهاد دستشو تکون میده که یادش نمی. واقعا منو یادت نمیاد؟ با این استعداد ذاتی که تو تو ورزش داری، بهم حق بده که توی ذهنم جای اضافه ای برای آدم تنبل و کوکلی مثل تو نباشه. دیدی؟ همین الانم هم دوباره گفتی. آسایشا پرستاری ویلچه ایره پیرمردی رو تیه پیر پزر سبز حرکت اینده بهنام و فرهاد جلومه سلام بابا فرهاد شرینه فریده سلام چه جمعه نایمدی؟ جمعه کار داشتم امروز اومدم جبرانی امروز و بجای جمعه جبرانی امتحانه؟ این چیه؟ این چیه؟ نمیخواد حرف زدن یادم من بدی؟ میگم این چیه؟ این بهنامه من, من میگم مرجانه؟ گفتم این چیه؟ این پسر همون زنیه که قراره بگیرمش خاک بر سرت کنه مادرتی میخوای بدی به این؟ یکی ارزادش نیلوپره نگه همی داشت فریبا فریبا بوده خاله چی بوده اسم؟ فریبا قضیهش با این فرق میکنه من و شیری میتونیم با همدیگه خوشبخت بشیم بابا هم. یعنی تا اون باقی زنده ای؟ برگام شو بینه بیجلو بیجلو بیجلو من بینه دستتو بینه دور بزن دست بهنام میگیر و سشار میده بخواه این که در بر که بهنام از درد به خودش میگیر بیجلو دست فرهادو میگیر و فشار میده آیننه <تصفح> بهنام زیره کنه به فرهاد نگاه میکنه <تصفح> چیه؟ <تص پس بالاخره یکی پیدا شد که تا آمداش حساب ببری بابامه چیکار کنم الو پویا تو این تحقیق کردن شما قبلا نهند دشته. بله منم تازه متوجه شدم گوشی باش قدم الو سلام پروینم رسیدی فرودگاه ماشه تو دنبله قیدت نکرده من نیومدم که هنو تهرانم گوش باشی خدرم گوشی, باش گوشی. الو خویه الان کجایی؟ نمیخونه یه ترم ببین آدرس و اسمس کن خودمون میرسونه گوشی آه. یه سالون عدن منتظرم بهتن اون وقت تو بردل ممنجونه چی؟ آشد دیر نکنیم؟ تو فکر کردی من بازی چطر؟ منتظرم خود بیایم فلوکسی وارد پوچه میشه بهنام پیاده میشه حالا وارد فلوکس واربانه اون نارنجی رنگ هوی سلام سلام تو مطمئنی؟ با. چه جوره اینا هاش تو دوربین فیلم بردانشو به بهنام میده از زنی که وارد خونه شده فیلم برداری کرده بعد دبینمش حتما از سوالایی که باشه اکی با زندگی کرده حرفای زیادی برای گفتم ده ولی تو تو کتابت گفتی توقف توی گذاشته حال رو از آدم میگه کتاب اصیداش بردن بله ولی نه این گذاشته که با حال آینده من و مادرم پیوند خورده من قانه نشودم اگه مادرم زمانی حقیقت رو بفهمه که جز سکته راهی نداشته باشه چی؟ من الان مسئولیت یک فرزند روی شونمه نه این نویسنده این برادرم امجید تحصیل کارگردان برنامه و تاثیر بردارم امجید به سلام کن سلام امجید پور انرژی سلام کن آه. سلام ها سلام مهنم پیاده میشو به سمت خونه زن نمی ببین برای مقابل با دشمن بدترین راه برای بشفه کن حمله کن دوباره فکر رو هم.و ده داره داخل کتاب رو میگرد این ماله فصل 22 که تو کتاب نایمده فقط دارم به تو میگرم عزید با بیاد عزید یالا یالا مجیدم بیاده میشه مجید بیا. زنگی دارو میزنم فریبا از توی تراز سرد. سلام خانم سلام علیکم من بهنام هستم بهنام نادری مجید فیلم میگیره ایه. نویسنده ای کتاب رازهای موفقیت و رویارویی با, روی روی با حقیقت زندگی؟ <صفح> بله ببخشید میتونم چند لحظه مزاهمتون بشم؟ <صفح> بله بله خیلی خوش اومدیم هر تا وارد خونه یه فریبا میشم <صفح> ببخشینا یه زن خونه ریخت و پاشه <صفح> خواهش میکنم شما ببخشی ما سر زده اومدیم زن توی آشبازخانه میده خونه به طرز خیلی بدی به هم ریخت و کسیبه مهرام و مجید روی ماب میشن. مجید کوچولو هنوز داره فیلم میگیره. فکرشم نمی‌کردم یه روز زنگ در خونم به صدا در بیاد. نویسنده کتاب مورد علاقه‌ام بیاد خونه. کسی کتاب زندگی منو ها به طور کلی تکوند. فریبا با هاشمی خواهش می‌کنم. اینو می‌ذاره جداشه. من بارها و بارها کتاب شما رو خوندم. هر دفعه به یه نکته جدید رسیدم که با چیدن این نکته ها کنار هم ها زندگی من کاملا متحول شد. راستش من دارم کتاب بعدی مو شروع می‌کنم. جدی؟ درباره چی هست؟ ناکامی های زندگی مشترک. چه خوب. من مطمئنم تأثیر اون رو زندگی من میتونه بی‌نظیر باشه. چون من شنیدم که شما زندگی پر فراز و نشیبی داشتین گفتم رو از شما شروع کنم برای من که باعث خوشحالیه بفرمایید ممنون اونطوری که من شنیدم شما با شکیبا ازدواج کرده بودین فرهاد شکیبا بهنام به نام مجد اشاره میکنه که صورت فریبار از نزدیک و بزرگ اما چه ازدواجی آقا خیلی سخته که بهترین سالهای زندگی آدم با مردی سفری بشه که کارشو بیشتر از زندگیش دوست داشته باشه شکی با توی ورزش به هر جایی که میخواست رسید ولی هیچ وقت سعی نکرد که یه قدمم برای منو زندگیش برداشه به خصوص وقتی که مادرم خدا بیامرز فوت کرد منم خیلی افسرده شده بودم تازه بدتر از اون اینکه هیچکس منو تو موفقیت و اون زعیم نمیدونه. بله نکته جالبیه میشه همین موضوع رو بیشتر بشکافیم خب بله البته اه... ببین، اون اوایل زندگیمون شکی از خونه خارج میشه. فریبا مدرقه شون میکنن. کنیم زحمت دادیم کارمون خیلی پیش بود جتی حرفا مفید بود چجورم ببخشید فریبا خانم من یه سآلی داشتم شما واقعا کتاب منو خوندیم بله 17 دفعه راست میگیم. Reproduce. حتی یه دفعه ها تا صفه 19 شم رسیدم بعدن خوابم. از قول میدم به بالاخره تمومش کنم. امیدوارم. خدافظ شما. خدافظ. سمت ماشین. فریبا خدا آفرین. ماشین پولیدم حرفه ای کار کرده آ فکرش رو نمیگردم. داداشت فنگو با حرفه ای ها کار میکنه برم جون. حجی تشکر. ممنونم ولی این کافی نیست مادرم با این مصابه صادق آنه نمیشه او یا به بهنا خیره میشه ماشین رو روشن میکنه و حرکت میکنه محرد از کم گرفتی؟ او رو خونه غروب نشده با یه مدرک جدید میام که دهن همه رو ببنده فالکسواگن <تصفيق> نارنجی از جلوی خونه قریبا دور خونه به سلام سلام مجید و پوید داخل سلام این بچه شده تیز ماهیمی نیست مجید یه چشمش کامل کبوده دنوب جون مدرک برو دار باغ لبا آب رو برای شکیبا نمیمونه اه آجان خوابه آقای شکیبا دومتو روزا رو کولتو از این شهر برو برو برو شکی با دن برو دوربینو با فیشش به تلویزیون وست میکنه به تلویزیون فیره میشه باشه آقا شکی دیگه تکرار نمی کنم حواصل اوجه هم میکنم او فیفی مجید روی زمین میفته و شروع به زبن شد باشه آقا شکی باشه دیگه تکرار نمیشه باشه آقا شکی باشه آقا شکی باشه اشکردی مستنده مستند نور داشم هیچ سیام تو سعنا. زدی بچه رو ناکار کردی مدرک سازی کنه خیر سرت بابا من نزادم که آقای شکیبا زاده نکردی کربزی یه بار دیگه بذارم نگاه کن آخه کدوم آدم عاقلی باید است بچه رو میزنه باید است فیلم میگیره بهنام سعیشو تیکونی بویا خجالت زده است نگاه کن بده چه چه <تصفيق> در باز می مادر مدر فرمت فاره سلام سلام تو خونهی؟ برهاد شیرینی خریده دوستای من هن. پویا و مایز سلام سلام سلام ما دیگه داشتیم رفع زمد می کردیم <تصفيق> فیلم همیز داره بخش میشه مهنام با عصبانیت به کلی اشاره میکنه مادر و فخار به صفیه تلویزیون هر کاری میکنه نمیتونه اصلاف دوبینو بزنه برها جبه شیرون رو تیشه کلی همه به سمت تلویزیون میکنه بیش دوبین از جدا میکنه من به محترمانه ترین شکل ممکن وزبایم اویا و مجید هر دو در مدید البته من خودم هم خیلی نمیشناختم شونو. همین یه چند روزه که مادر سرزن شامیز به بهنام نگاه میکنه فرهاد عصبانی به اون یوتا خیره میشه و با قهر از خونه خارج میشه بهنام فرهاد فکر میکنه تو ناراحت و ناراضی فرهاد من این فکرم میکنه در مورد اون اینجوری حرف نزن بخوای نخواهی اون حالا دیگه عضوی از خانواده ماست تو که نمیخوای مجبورم کنی درباره زندگی شخصیم طوری رفتار کنم که تو دلت میخواد نه نه پس تمومش کن همین جا و همین حالا با هم کنار بیاین. این اون چیزیه که من ازت میخوام. تو تموم این سالا با همه خاص کنار اومدم. این توقع زیادیه که به انتخابم احترام بذاری؟ حق اقوه پس امشب با هم میریم بیرون با یک نگاه جدید پس من برم به فرهاد بگم تا نرفته تام هم زنگ زن به پروانه بگو سر را میریم دقیقه مادر دوان دوان میشه شهر بازی بسکتی رو داخل تور می‌ذارم. دوباره شوت. یه بم باشه، رو تو به بالای توپ. من تو چشره برو. علیگه بسکتبال اصلاً رشته تخصصیه من میدونم رشته تخصصیه تو فقط کشتن موش و توپ دیگه ای رو برمی‌زدم، اصلاً کشتن سم چه فکری تو میتونه بستم تا غرفه یه پرتابی دارد پرخواد بیگم نفتت امتیاز خیار یه حرشک گونده برای بگیم چشم اونو دوست داری؟ آره اون خوب اینال منو خیر سرم دارم چشم اونو دوست داری؟ یکم باسی نگه یکم باسی نگه ببین من دو بار به تیم نگیه دارد درد شدم گبه اینالو بینور ندردی دارم اینو گفتم که هر بست که هم فرهاد فرطاق می کنید وسط عدم فاصله کمی فاسده و چارمی وسط عدم حالا نوبرد شما بهنام دارتای خودش برمی داری رو فرهاد در کشش می گه چطور؟ من خانمار سرگرد میکنم تو با دو رو طبق یه دونه این عربی سکر بخربیه این تنها کمان تو خودتونه پوست فرمیزه پرتاب با فاصله حق میبن اطراف پرتاب بعدی دوباره با فاصله پرتاب سبا کسا نمیخوره ارگانه من ما مردم از این غرفه عرصت خیلی بزرگی رو به مدر مدرم دستتون دردن مبارک و یه جاسورچی کوچولو به به نراحت نباشی بازی برای کنار هم بودن و لذت بردنه مهنام با خجالت جاسورچی رو به پردنه وای آقا جون کجا هست؟ تو بگی تو این گیرده آقا جون روی گاب بحشی مصنی نشسته و گاب ماشینی تکنی کنی کنه ادهی دارن تشکیه باشون آقا جون این چه کاریه خطرناکه بی پای. چیکار کنم؟ این و فرهاد پشت دستای مسابقه اس دب میشه. باید توپایی رو پرتاب کنند. اگه این تو هدف بخوره، اسکوپ دستا به قسمت حرکت میکنند و جلو دلاخره تو با حالا حال بهنام و حالا تو با آقا جن به هدف توی هر دو با هر به هدف بودن تو پا ادود از ها تمام سعیشو میکنه تا دلاخره اصلی زیدتر از از با آقا جن و فران به قد اس کو جان گل پای می دند از این کو تمی برای چیو بر تو الفا عیون اول میگه برتر مسابقه اینا تعلق میگیره به بهنام نادری لیوی هونا لیوی هونا لیوی هونا لیوی هونا سکیبا تهی جات هیچ چیز آدم نه بالاخره لهب کردم از رو بردم مادر از این باکتر کوده حسابونی تهی جات با تهی جات با با سکیبا تهی با با سک... بسته دیگه بهنام سری بپایین پروانه خجالت میکشه مادر میذاره با میره بهنام کمی به خودش می خودش جمجور میره فرهاد با گوزخن به بهنام بگه. اتاق بهنام روی تخت خوابیده که گوش رو از روی پا تختی برمیده منم الو به اینم تو همونش خوابی بدونی چه مدرک توپی برات پیدا کردم خواب از سریت میپره مثل اون فیلم مستنده تو <تصفح> نه بابا این دفعه فرق میکنه بیشگا بابا نه تو میتونی کاری بکنی نه من دیگه آلو سلیم منو بگو که به خاطر تو تمام شب و تو کوچه خیابون علاق شدم تا رد زن بچه قربی و خونه رو برای تیدا کنم پهنام چشماش گیرد میشه راست میگی؟ خیابون ماشین کنید مطمئنی شده. آره بابا از کسبه تأخیر کردم ها. زنی چادری با بچه رد میشه چند وقتی یه کسی شوهرشو ندیده ولی من دیدمش یه گورگوم شبا اومد و چند تا نایلون مفصل میوه و گوشت و یه پاکت که حتما خریدی داد و بعدش هم سریرم. پس معتل شدی دوربینا ورده بله. اوجا بریم که خونه دیگه دیگه مدرک جمع کنی. من از قانون یه چیزای سر در میارم ها. ورود غیرقانونی تجاوز به افسه. خیلی هم با پایدن ساده فرق میکنه به محدودیت های دیگران احترام بگذار. پس فصل 13 یاد درفته. کتاب داری؟ آره از توی داشبورد کتاب مهنم خساب رو میخواه مره پار کارش میکنه پرترش میکنه جلی شیشه ماشه چیکار کار میکنی؟ که انقدر تو گوشه من ورور نکنی این کار نه فصل دوازده اون کار نه سپشت دوشیش این کتاب خود من نمشتم این قرفان منو تو گوشه هم دکرار نکن حالا دیگه کتاب نیت که بشه استناد کنی هر چی میشه میگه بلی. سلام سلام پر من مثل که بعد موقع زنگ زدن نه نه چیزی نیست میخواستم رجب تیشت ببین اتفاقا منم میخواستم به زنگ بزنم بگم اون اتفاق اون اتفاق از نظر من یه حشدار بود تمام شب بهش فکر کردم اینقدر که میخوام در مورد تو تجهید نظر کنم نه نه پروانه تو داری اشتباه میکنی یا. بابا اون یه سوطفه ساده بود که حل شد من نمیتونم با مردی زندگی کنم که توی موقعیت ساده از کوره در میره و نمیتونه روی رفتارش کنترل کنترول ای داشته باشه میفهمی؟ الو پروانه پروانه گوشی رو روی داشبورد پرس میکنه او یا تکه کتاب رو جمع میکنه بهنام عصبانی تکره میکی رو که از توی دهنش میکشه کنم میجبه بویا و زده به بهنام و رفتارای غیر آدیش نگاه میکنه خونه مهمان وارد خونه میشه مادر خوشحاله و در حال اتو کردن چند تا سلام سلام سلام اومدی یه دوتنامه برات تو خورده از کجا؟ مراسم تقدیر از یه نمیسنده جوون و موفق فرد صبحه صوپه هم خیلی عوض خواهی تر که ولی اصرار کرد که حتما بری یه جمعیت مسئولی هم هستن ای بابا پیرهن منو داری افتوم نه امروز برای شکیبا خریدم خیلی به رنگ پوستش میاد مگه اونم میاد؟ بله مراسم توی سالن جدید ورزشی برگزار میشه که به پاس یک عمر خدمت صادقانه به ورزش به نام شکی با نام میشه آخه اون مهمونه ویژه هست چی؟ سالن به نام اون؟ محما در پیراهانو از روی میز اونسو برمی شده خدمت از پله ها باده به نام دعوت نامه به دست جلی پله ها میسته مراسم تجلیف عکس شکیبا با چند خط نوشه تقدیر از شهرگ ممونه اخلاق و ورزش روی پارچهی روی سن نصب شد. تعداد زیادی برجه شرکت کرد. آقا جونم نشسته بین مردم. بهنام روی سن میره و کنار فرهاد مدرم شد. همه ما امروز به خاطر مرد اینجا جمع شدیم؟ که هر کدومون اون حداقل یک خاطره شیرین نداشت دارید شی اما بلد. اجازه بدید این مرز از بین حرفای آدم هایی که میشتستنش بهتر میشتستیم تشریف پیش کنید چندن سال پیش یک روز آقای شکیبا از کمود رخکن ما یک بسته سیگار بیدا کرد اون روز آقای شکیبا حتی سر من داد نکشید و در یک کرامن از باشگاه خودش بیرون نکرد اما کاری کرد که من, من برای همیشه سیگار رو فراموش کردم. سال بعد بورسیه فوتبال گرفتم و الان سالهاست هاست که در یک باشگاه دست بازی میکنم. من چی می به این مرد بزرگ بگم جز اینکه بهشون بگم من از سمیم غل دلم فقط زیاد خدا خیلی منو دوست داشت که آقای شکیبا رو سر راه زندگی من قرار داد تا چگونه مرگ شدن رو ازش بیام و حالا من دارم پدر میشم و از شما جناب شکیبا تقاضا دارم به من اجازه بدید که اسم فرزندم رو شکیبا بذارم تا به خاطر داشته باشم چه کسی بود که زندگی من است سلام بابا کارسان دارم یه خیلی خیلی خیلی یه روی که در خانمون بازو نبود، بود برسی اوشکی رفت بیرون یه ماشین بیزد اما با کمک کرد تا حال خوب بشه اگر با نبود برسی من الان پیر ماشنا له شده بود بعد چند روز با یه جعبه بزرگ یه حوی چپاک شده اومدان ایادت برسی مرمون اوشکیبا برسی باشه خو من <تصفيق> است <تصفيق> این تنها شایسته از شخصیت مدی که همه ما باید به همسایگی بودن با اون افتخار بکنیم. بی خود نیست که بانیان این سالن ورزشی نام شکیبا برای این سالن برگزیدن. که به یاد داشته باشیم نام نیک ماندنی مادر به پیلاتی فقط آقای بلند شده پشتیده خیلی ممنون. دست به نام خدا با سلام خدمت همه شما عزیزان توی لحظه چی برای تونم نگیم از همه تو خیلی دارم چشمای فرهاد پر از نهرم شد همه برامیشون درست بسید مادر برامیشون درست بسید البته به نهرم بسید برامیشون جوان صاحب غلم خوش آتی صحبت بکنیم که کتاب سرشار از امید و همت او تو توانست در مدت کوتاهی به چاپ هشتم خودش برسه. جناب آقای بهنام نادری. در اونجان شاکیبه با و آرم شما همه تون دیبونهی <تصفيق> <تصفيق> ملویا و مجید وردی سالان شد من به سه شابه شما از آدمی دارین تقدیر میکنین که به خاطر باشگاهش و نه به خاطر برزش پوسه بچه هاتون کند پویا دست میزن و همه با سرزنش نگاهش میکنن پویا وا میره <تصفيق> یکی به این بچه نگفته شاد امو شکیبا خودش به خرگوش شده وجدان در گرفته افتاده درمونش. که بنده بعید بدونم این مرد اگه به آدمم بزنم ماشینش بیاد چه برسه به خرگوش شما خاطرات گلچین شده تونو گفتید اجازه بدین منم از چند نفر بخوام که از شکیبا براتون بگم خانم فریبا همتی فریبا بین مردم همسر سابق آقای شکیبا میشه لطفاً به ما بگیم, ما بگیم که چی, چی شد که آقای شکیبا شما, شما طلاق داد, داد. آیا, آیا جز این بود که آقای شکیبا ورزشش و کارش رو به شما, شما و زندگی با شما ترجیح داد راستش من بعد از مرگ مادرم مقانه به اعتیاد کشیده شدم شکیبا وقتی فهمید خیلی تلاش کرد که من اعتیادم رو طعب کنم حتی چند بار به این فرصت داد با من اتمام حجت کرد اما خب منم اگر بخوام منصفانه نگاه کنم باید بگم که من برای تصمیمش احترام قائلم شما من seni çıldırdı o konuşa شما که نمیخواید بگید به طور اتفاقی اومدین اینجا باقای شکیبا نمیشناسین شما از در باز افتاده و 6 ماهه که توی خونه است واقعاً شکیبا و چند تا آدم بزرگوار دیگه توی این مدت خرجی ما رو می‌دادن. حتی مخارج فیزیوتراپی رو هم زحمت کشیدن. اجازه بدید از احسان بگم. جوانی مطلبه عاشق. کسی که نوجوانیش رو با تمرینات سخت زیر زحمه همین مربی گذروند. اونقدر که بدنش ضعیف شد و تو عمل پارسال طاقت بود و مرد. پارسال عمل سختی داشتم مرد جوانی, جوانی در بین جمعیت. دکترها از عملم راضی بودن. یکی از علتاشو تمرین های ورزشی می که آقای شکیبا به من گفته بودن شاید با شاکپا یعقیل شما گیرت اولش این مقاله نمیشی با چهار تا آدم تنبل تنبر بس قادر نیستن ده در روز برن پارک سر کوچهشون ورزش کنن وقت من با چهار برابر حرفه مفت زندگی چون بشه بشی دوره افتادی که زندگی مناتو بگیری تو به کی هستی اگه به خاطر مادرت تو هم کتابم چین زدم که بس پشه بشه میسینه دیوار مادر از دل سالن بیرون یاد اونم بس به دیگه با هر دوتونام فقط احمد بودم که فکر می کردم. از اول به بعد می‌تونم یه زندگی آروم داشته باشم از دست خودخوایی هر دو تو خسته شدم مادر ناراحت حلقه شده هنیرو رو روی نرده‌های خارج از سالن میسازه شکیبا شوکی شد بهنام از شکیبا فاصله می‌گیره شب حیات خونه بهنام غمگین و ناراحت از خونه خارج میشه شالی رو روی شنهای مادر که توی تراز کس کرده میدازه و کنش باشه چرا بیرون میشه سی توی سرما هر بار که کسی میامد خواستگاری تو بی این که چیزی بگی؟ تب می کردی و پرخوش گرم یه بار بعد از نماز صبح وقتی اومدم بهت سر بزنم دیدم داری تو خواب گریه می کنی همونجه تصمیم گرفتم که به آخرین خواستگارم جواب رد بدم و فقط زندگیمو بذارم برای تو فکر می تو منو داری. بل این کافی نبود. چطور تو میتونی پروانه رو انتخاب کنی؟ یعنی من نه؟ بهنام به فکر فرو میره. ا از مادر فاصله میگیره و داخل خونه میشه. مادر به تاریکی زل او بعد. لطفا ماشین برای 14 روی ماب میشینه و به زمین نگاه میکنه. یه کوچیکی رو از روی میز تلفن برمیداره داخل کیفش میذاره از چش بلند شو به سمت در میره بهنام در حال پوشیدن از اتاقش خارج میشه داری خوشا میری؟ امروز مراسم مغده دختر بیسرپرسته من قرار مادر خوندش بشم باید دوباره مادر خوب بودن تمرین کنم این چه حرفی تو مادر خوبی هستی هنوز که منتظرش میمونم. یه عمره که منتظر بودن شده کار هر روز مادر از مله ها پایین میرم بکن آیفون رو بله اومده شما این در باز میکنه از بله ها پایین رو حیات به مادر می رسید خب من آقا متاسفم دیگه مهم نیست خونزه سال تنها بودن رو تجربه کردم بازن می سلام خانم خانم ناشر بهشو نزدیک میشه مادر از حیات خارج میشه شو بهنام با چشمان فیز رفتن مادر رو نگاه چرا موبایل تو جواب نمیدید؟ حیث یه ارتباط زنده داریم باید تو نیم سرطه دیگه روانتن باشید قاعد با سیاه تو راه نمید سر فرصت حق تو میذارم که دستت آژانس مادرت یه نشسته به بیرون خیره شد صورتش هر لحظه گرفته زر باشه عشق تیه چشماش حلقه می <تصفح> <تصفح> گروه فیلم برداری در حال آماده کردن وسیله هاشون هستن روی سپایه رو نسل می مانیتور مونیتر راه صدا بردار میکروفونش رو تنظیم میکنه. کنه ناشر روی ماب کنار به میشینه. می خوب جمع کن یه رو بیشترانتا نداریم هاشیه نمیری زحمات ناشرت هم فراموش نمی کنه ام. ما آمده ایم عریسی مادر به دست در حیات می <تصفح> که چرا کشده دارن اسفندی بسیار خوب ارتباط تصویری ما برقرار هست با یکی از جوانهای عزیزی که تمام ارتباط مستقیم و تلویزیون روشن با زندگی رو در کتابش تقدیم به هموطنهای عزیز و ارزمت کرده جناب آقای بهنام نادری بهنام سلام بهنام سلام بهنام خیلی خوشحالم که دارم با صحبت میکنم میخوام ازت خواهش بکنم با بیننده که خیلی هاشون از حوالاره کتابت هستن سر صحبت رو باز بکنی تا من سوالام رو مطرح کنم به همه سلام همین؟ و خوشحالم که در خدمتون هستم به هم به ما میگی که با وجود اینکه انواع و اقسام کتاب های خارجی در مورد موفقیت و کامیابی توی بازار هست چی شد که خودت دست به کار شدی؟ ده سال تنهایی رو تجربه کرد بهنام بله اصلا بذار سوالم رو یه جوری دیگه مطرح بکنم میخوام بپرسم که در واقع الهام بخش تو برای نوشتن این کتاب چی بود ناشر اشاره میکنی که ادامه بده مادرم بهنام آشفته از روی ما بلند شو میره چی شد؟ کارگردان مبهوت مونده. بهنام مجری تلویزیون هم سردرگمه نمیدونه چه اتفاقی خب بینندگان عزیز ارجمند ببخشید ارتباط ما دوچار مشکل شد اجازه بفرمایید یک بخش کوتاه رو تقدیم حضورتون بکنیم و در ادامه برنامه در خدمتون هست تاجا بفرمایید. بهنام وارد حیات میشه ناشرم بدون. کجا میری بونه؟ اگه زود بعنگردی فردا تمامش کو سفتهاتو میذارم اجرا. بهنام توجه. از میکنه بهنام. بهنام. بهنام میره. ناشر با عصبانیت گلدونی رو برمی داره و پشت سر بهنام پرتاب میکنه و گلدون خرد میشه و کف حیا پخش میشه. ورزشگاه شکیبا. فرهاد وسط تشک کشتی چون زده و سرش رو دیگه دستاش گرفته. بلهم میشه. ناامید و ناآروم قدم میزنه. ورزشگاه خالیه. هیچ کسی به غیر از فرهاد نیست. بهنام از در ورزش را داخل میشه جلامی هم به فرهاد خیره میشه من هر کاری کردم فقط به خاطر مادرم بودم بازی تازه را بندازی تو هر کاری میکنی به خاطر خودخواهی خودته با اینکه نامزد کردی هنوز نمیفهمی که یه زن وقتی یه کار رو بخواد بکنه هیچ که نمیتونه تصمیمشه عوض کنه مسئول مستقیم تصمیم که مادرت گرفته خود توی باش من مقصرم تو که مقصر نیستی چرا بهش نمیگی حسابت حساب تا از من جدا کنه از جدایی دوباره آره. آقای بچه فالگیر تو آدم پرویی چی نمیتونی شادیه و خوشحالی مادرتو ببینیم مهنم اصابانی از روی نرده های زمین بازی به داخل زمین میپرد بالا بری پایین بیای توی پیرمرد محتاطی که به که رو نیمکت پارکا بشینه و از هوای سالم لذت ببره به زربزور رو ورزش میگاه خودت تو سرپا تو هم بالا بری پایین بیای همون بچه پر از که از زمین و زمون طلب کاره ببینم نکنه تو واقعا فکر کردی من هنوز همون کپولم که با شنا دادنش اغدایی ده تا غالی کنی دهتا برو دهتا برو فکر میکنی فرقی نکردی؟ بله واسه بس کن بیا بهنام لباس ورزشی پوشته و به سمت وسط دو شکله که فرهاد پیروزمندانه وسطش جست گرفته و ایستاده بهنام خودش رو گرم می کنه هنوزم دیگه نشده کسی نیست خودمونی تو خسته نشدی نمبر رجی کردی؟ به فرهاد می میگره فرهاد باید یه دست و دیگه پرتابش میبره. این زمین زدنی یه بچه پر روی چاق و کپوله بهنام بلند میشه آقای فرهاد رو رو میگیره و سعیم کنه فرهاد زمین بزنه حالا به یاد میاره بچه کچا کپوله انقدر خودتون مثل برطالهی که شاخش به من نمار نمیتونی چون باور نداری که فقط داری خودو داریم خوابم نمیتونی که مورد بیرزمی داریم چون بابر نمیتونی دوباره فرهاد پرتابش میکنم زمین نمیدید. با فرهاد شروع میکنم به کشتی کنیدن قلط میزنن که گاهی به فرهاد قلبه میکنم اما خیروز تشک فرهاده و بهنام اصمانی میشه فرهاد از تشک خارج میشه بهنام نامردانه از پرش به فرهاد حمله میکنه و با کمک ترهاده که سر آویزونه تاب میخوره و با جف با به سینه فرهاد ضربه میزنه فرهاد زمین میافته. به این هم یغدای فرهاده میگیره و محتم شده می کنم دادم باشو گلش شکی من به مصابقات جهانی فکرمی کنم من مربی تمبل بل بلنش شکی با من, من مربی شکی مراب... اما شکی با فرهاد تکونه نمیخوام شکی من شوخی که آمبولنس بهرام نگران کناره برانکوارد داخل آمبولنس میشستم ماسک اکسیژن روی صورت فرماله یه گردنبنده تبیه هم برای محافظت از محرای گردنش به گردنش بستن فرهاد به خوش میاد اطراف نگاه میکنم ماسک رو بر میداره و به بهان خیره میشن فکر کردیم اون سلام به توسعه خود لایف هر و لایف دیتانا هستم. طارق منی نوشته بود که تا نمیتونی یقی خوشگاه نباشی که آدم هر وصله ای به دشت کنه آخرش ها؟ مثل باید باید بفتی گوشه هاستش که تو مردم از شهر درمونت باشه برو اینطوری صدیبا نمیری الان اون تو عروسی نشسته ولی تو دلش قم عالم یعنی نمیتونی به زندگی خودت برش که آگونی بری فرفت لخنز. با سر مبافقه قضید آقا نگه جل... یعنی دور شکیبا نسته و احنامه میک میده و سنگ کنه موچش رو با ایجازه بزرگتر عروس همه اطراف سفری مادر صورت عروس رو میبوسه و, و هدیه رو بهش میده ممنون که اومدیم لطفی کردیم خواهش میکنم همه دیده من هم جایی مادرم صورتش تم گرفته است اما سهر میکنی خوشبه باشه آمولا توقف میکنم دو تا از فرستدارا و بهنام سختی برانکارد فرهاد از کچه پس دو جاهای تنگ و باریک و از چاله چونه که محله او گویدن با حل پیچیدن یا هر کوچه فرها تعادلشو از روی برانکارد از دست میده پیمیفت این طرف پیمیفت اون طرف سعی میکنه خودشو روی برانکارد با زحمت نگه داره مردم رو کنار میسن برانکاردو به جلو پیمیدن تا میرسن جلو پیم نگیم برانکاردو قرار جوریه داره برجبیه تغییرش میده. اپا میخوام یه راست بوش. نه نه. یار خوده حیات میکنه. چرخای برانکارد به سنگ توی حیات گیر میکنه و براش میشه. برات عصب میشه به یه زمین زنه بنداق شیشموشو دستش میکشه. ترسرا با صدای فریاد برهات داخل حیات میفته. ایناخره فرهاد درب و داغون شده رو روی برانکارب میزاره مرد نحسابی شد تو یه کار درست حسابی انجام بدی؟ مادر با سر و صدا داخل حیاتونی فرهاد چی؟ مترسه همین؟ البته از یه آدم انوغی مثل این همین خودش پیشرفت بزرگه ها بزرگش بهتر فرهاد با سر تایید می‌کنه. مودبانه می‌زنه. ها. به هم کله شو سرش. میشنه. آدم خوش ولی کم کم داره نرم اون بهت سخت گرفت که رویای خودت واسه. آره. دیگه احساس نمیکنم یه بازندم. به حال بخوام یا نخوام اون تو چیزی که الان هستم، ذهن. درسته. فرهاد کنار نیمکرد بند کفششو میبنده روی نیمکرد میشه خسته نباشی ممنون مادر و بهنام هم کنارش میشه خب استاد این حلقه رو چیز کنیدیه فرهاد داخل جیباشو میگرده چی گم کردی نباشه که با بحبه چه چه م... یعنی مامان روشن واقعا چه سا بودیم من کش رفته بودم ها بهنام خلقه رو به فرهاد. رفعت گفتن کجا بود؟ داتا برو. هان؟ داتا برو. فرهاد <تصفح> <تصفح> <تصفح> دو مادر به سمت ماشین میرن. سوار ماشین میشن. حرکت میکنند. به پشت سرش میده و با, با لگد کردنش رو عصی میده اما اینو نمیبیننش. مرستت نیمه نمی‌دونم مشکلش چیه با من از دور دوباره فرهاد دنده عقب رو با سرعت به سمت بهنام میاد زلی بهنام دیگه فقط شوخی کردم بابا بیا بالا چی <تصفيق> شد به در ماشین رو باز میکنه و با سبا راشه سویت شکیبا روی زمین افتاده و تایر ماشین از روش عبور میکنه و سویت لهم می ماشین داخل فیابونا به آرومی حرکت میکنه و پیش امیدوارم از شنیدن سر و شاخ لذت برده باشید همکاران من هنانه اسکاف سردوی رو تهیه کننده فرزاد شریفی بردار و من سنم سالهی راوی نویسنده این برنامه بودم تا رادیو فیلمی دیگه خدا نگهدار